الهروب فرار کردن تسب دشنام میدهی ترکض میدوی الهروب نصف الشجاعه و النصف الثاني ان تسب و ان تركض فرار کردن نیمی از شجاعته و نیم دیگر شجاعت اینه که در حال دویدن فحش بدی